سلطان ولد قونی زیهجه شخصد و و شمس گفت اینقدر فکر و خیال نکن نگرانی که هیچ کس به آین نیاید اما نگرانیت بیهوده است ممکن است مردم شهر مرا دوست نداشته باشند و به پدرت هم مثل قبل احترام نگذارند اما نمی توانند به مراسمی که ما تدارک دیده ایم نیایند. برای فضولی هم که شده میآیند آیند. آدمیزاد بینی، آدمی کنجکاو است. درست همانطور شد که گفته بود. شب آین یک دفعه دیدم اطراف میدان پر از جمعیت شده. تاجرها، دباقها، آهنگرها، قالیبافها سنگتراشها، رنگرسها، اتارها، فالگیرها، منشیها، سفالگرها، نانواها، پیشگوها، موشگیرها، علافها، حتی و حتی شیخ یاسین هم با تعدادی از طلبه هایش آنجا بود. وقتی سلطان کیخسرو و مشاورانش را در ردیف جلو دیدم خیالم راحت شد. آمدن سلطان به اینجا نشانه ارزش و اعتباری بود که برای پدرم قائل بود. امیدوار بودم این حمایت معنیدار دهن مردم را ببندد. خیلی طول کشید تا همه جایی برای نشستن پیدا کند. برای در امان ماندن از حرفهایی که پشت سر شمس میزدند، دنبال آدم مناسبی گشتم تا پهلویش بنشینم. آخر سر کنار سلیمان مست نشستم. دهنش بوی شراب میداد، اما حداقل زخم زبان نمیزد. با آنکه هوا خنک بود، همینجور جور عرق می کردم. خوب برگزار شدن آیین آن شب به لحاظ اعتبار پدرم اهمیت داشت. دعا کردم همه کارها خوب پیش برود. اما چون خودم هم درست نمیدانستم چه میخواهم دعایم هم نامشخص بود. همین طور نشسته بودیم که یک دفعه صدای نامحسوس موسیقی بلند شد. ابتدا مثل پجواکی بود که از دور دست ها میآید رفته رفته شتاب و جذبه پیدا کرد. تماشاشی ها وقتی این صدای سهرامیز که انسان را از خود بی خود می کرد به گوششان رسید از پشپش پش کردن و وول خوردن دست کشیدم. نفس در سینه ها حبس شد. سلیمان مست شیفته و شگفت زده در گوشم زمزمه کرد من که نفهمیدم این چه سازی است یاد یکی از صحبتهای شمس با پدرم افتادم گفتم اسم این ساز نی است به دیگر سازها نمی‌ماند. صدایش آهی عمیق است آه آشقی جدا افتاده از معشوق صدای نی که کمتر شد، پدرم پا به میدان گذاشت. با قدمهای شمرده و آرام به وسط میدان آمد. آرام خم شد و به همه سلام داد. پشت سرش شش درویش به میدان آمدند که همگی از مریدان پدرم بودند. تن نور پوش و سکه بر سر. دستها را بر سینه گذاشتند و برای گرفتن رخصت جلو پدرم خم شدند. سه دور حلقوار گرد میدان چرخیدند. با صدای موسیقی که دوباره بلند شده بود درویشها تک به تک شروع به چرخ زدن کردم. ابتدا چرخ زدنشان آهسته و سنگین بود هرچه بیشتر چرخیدند سرعتشان هم بیشتر شد سرعتشان که بیشتر شد دامن تنورهایشان تن مانند گل نیلوفر باز شد چه منظری بود با قرور لبخند زدم زیر چشمی به اطرافم نگاه کردم و عکس عمل تماشاشی های سما را زیر نظر گرفتم حتی آنهایی که معروفند و اینکه که هیچ چیزی را نمیپسندند پسندند نگاهشان تحسینامیز بود درویش ها در حین چرخ زدن چهار سلام دادند خوشی انگار پایانی نداشت موسیقی قوت گرفت صدای رباب که پشت پردهایی نواخته میشد با صدای قدوم درامیخت و صدای قدوم با صدای نی درست در آن اسنا شمس تپریزی جاری مثل آبی خروشان به میدان آمد رنگ تنورش تن سیرتر از سایر درویش ها بود قدش بلندتر از همیشه. و تنش به نظر می رسید دست را به دو طرف باز کرده بود کف دست راستش رو به آسمان و کف دست چپش رو به زمین بود همانطور که شمس انگار که در گردابی نامرئی گرفتار شده باشد دیوانوار چرخ می زد و مریدها هم آهسته آهسته دورش میچرخیدند پدرم ایستاده بود و لبهایش مدام باز و بسته می شود. پیدا بود مشغول دعا خواندن است. هماهنگی غریبی قریبی بینشان حکم فرما بود. متوجه شدم آدمهای دورورم از حیرت ماتشان برده. حتی کسانی که از شمس تبریزی متنفر بودند به نظر می رسید تحت تأثیر این صحنه فسونکار قرار گرفتند. نمیدانم چقدر در آن وضعیت چرخ زدند. سرانجام موسیقی آرام گرفت. در ها یکی یکی از چرخ زدن بازی استادند. بعد با حرکاتی ظریف دستان خود را به صورت ضرب در بر سینه قرار دادند و به همه حاضران در میدان سلام فرستادند سکوتی عمیق همه جا را فرا گرفت هیچ کس نمی دانست چه باید بکنند کسی پیش از این چنین نمایشی ندیده بود سکوت را پدرم شکست دوستان آینی که تماشا کردید سما نام دارد از این روز به بعد در همه آثار درویش ها به سما خواهند پرداخت یک دستشان رو به آسمان خواهد بود و دست دیگرشان رو به زمین تا ذره ذره عشقی را که از حق میگیرند میان خلق تقسیم کنند در میان ردیف تماشاشیها ادعی سرتکان میدادند می دادند و بعضی ها اشک در چشمانشان حلقه زده بود. حال و هوایی لطیف همه را فرا گرفته بود. اشک سپاس در چشم های من هم حلقه زد. سرانجام پدرم و شمس حرمتی را که سزاوارش بودند به دست آورده بودند. میشد آن شب همانطور تمام شود. با آن سیل شکرریز احساس و میشد من شادمان و مقرور به خانه برگردم اگر وقایع بعد از آن اتفاق نمی افتاد. حیف که شمس همه چیز را خراب.